یکی بود یکی نبود. غیر از خدا هیچ کس نبود. حسن کچلی بود که در چهارسوی سوی نشابور دکان پینه دوزی داشت. از صبح تا شب پینه دوزی می کرد و کوک به کفشوی مردم می زد. شب که می به خونه بر می گشت. خونه حسن کچل خونه خرابهی بود در بیرون شهر. هر شب هر که از صبح در آورده بود خرج متره و دم و دستگاه می کرد. تا صبح میزد و می و خوش می گذروند. صبح دوباره روز از نو روزی از نو. حسن کچل تو همه سرش هفت و لاخ مو بیشتر نداشت. تختش رو در بلند اتاق گذاشته بود و هر شب روی اون می و کله رو برهنه نمی و آب و شونه به مطرب هم می بزنید و بکوبید که دنیا دو روز بیشتر نیست. خودشم وسط ساز و نواز مطرب ها ایشون نوشی داشت که بیا و تماشا کن. یه شب که حسن کلش گرم بود و بساطه ایشون نوشش گرمتر از همیشه شو باز تو قصرش نشسته بود و غذا میخورد. لقمه تو گلوش گیر کرد و گفت یالالعجب چه اتفاقی افتاد که لقمه تو گلوم گیر کرد؟ لابد کسی تو شرق گرسنه نمونده یا که کسی داره کار بدی انجام میده. باز حرکت کرد. رخت درویشی به تن کرد و کشگول و تبرزین و برداشت و از قصر بیرون اومد. دم دروازه که رسید دروازه بانها دیدن که شعبازه و دروازه رو به روش باز کردند. باز از شهر بیرون رفت. همینجور که قدم میزد دید از یه خرابه صدای حرف میاد. جلوتر که رفت دید چند تا بچه نشستن و با مادرشون دارن صحبت میکنن. تو که میگفتی به شهر شا عباس برسیم مردم به ما قوت و قناعتی میدند. قزویی که ندادند هیچ ما رو هم به شهر را ندادند. حالا چیکار کنیم؟ خدا بزرگ مادر جان بزا صبح بشه و دروازه شهر باز بشه. شا عباس جلوتر اومد. بچه ها ترسیدند و خودشون رو جمع کردند. زن چادرش رو به سر کشید و پرسید. کسی این وقت شب اینجا چیکار میکنی؟ باز گفت. غریبم از راه دوری میام. دم قروب بود که رسیدم. شما اینجا چیکار میکنید؟ زن گفت. ما هم دیر وقت به شهر رسیدیم. ما رو توی شهر را ندادند حالا بچهها گرسنه موندند و نمیدونیم چی چیکار کنیم میخواستی بری به خونه شعباس ما رو به شهر را نمیدن درویش جان تو میگی میخواستی بری خونه شعباس قبی نیست خواهر شما اگه اونجا نرفتید من رفتم و یه دل سیر غذا خوردم کشکوله هم پر پلو کردم بیاد بشینید و بخورید کشکول رو جلو برد و گذاشت و بچه ها جلو اومدن رو پلو خوردند خوردند و خوردند تا سیر شدن خدا به شعباس عمر و عزت بده تو کی هستی درویش جان درویشم خونه و زندگی ندارم برای خودم میگردم. صدای بچه رو که شنیدم اومدم ببینم چه خبره حالا که بچه ها سیر شدن خدا حافظ خدا پشت و پناه درویش شباس از خرابه بیرون اومد و یه مقداری که رفت صدای ساز آواز از دور توجهش رو جلب کرد. جلوتر رفت. دید صدای ساز آواز از خرابه میاد که بیا و تماشا کن. جلوتر رفت و از درز در نگاه کرد و دید یه گلیم وسط خونه فرش و وساط کباب و وساط شراب بپا. یه نفر روی تخت نشسته و داره موهاش آبوشونه میکنه. مدربا هم حسابی دارند میزنن و میکوبن. شه عباس به خودش گفت شه عباس زنده باشه و اینا یه همچین بساتی بپاخنن. چند لحظه پشت در ایستاد و آروم در زد کی هستی؟ درویش گفت درویشم. راه گم کردم. به شهر راه هم ندادند حالا ویلون و سیلون شدم در بازه بیا تو درویش جان بفرما شه در رو باز کرد و داخل شد حسن کچل جلوی پای شه عباس حرکت کرد و گفت بفرما بفرما شه روی تخت نشست خب خوش اومدی ما رو سرف کردی شه مونده بود چی بگه به ناچار ساکت شد و یک جنش هست. مطرفا زدند و رقصیدند و نصف شب پولشون رو گرفتند و رفتند. حسن کچل به تخت تکیه داده بود. که انگار به تخت پادشاهی تکیه داده. شب باز گفت. نه یه همچین تمتراغی به پا کن. نه یه همچین خونه ای داشته باش سکن. یه خونه برای خودت داشته باشی مرد حسابی اگر خبر به گوشش عباس برسه و بدینه که تو اینجور بسات و لهو و لعب برپا میکنی و پولتو اینطور خرچ میکنی میدونی چی کارت میکنه به تو چه من فزولی تازه بشه عباس چه رفتی داره پول خودمون میخوام ماتیشش بزنم خب کسب و کارت چیه چی کار میکنی که پولاتو اینطوری خرچ میکنی گفتم فضولی نکن. والا غیرتن بیا و بگو. میگم. اما اگه جایی از زبونت درس کنه هر جا گیرت بیارم زبونت رو از بیخ می برم. حاطرت جم رفی. زبونم محکمه. حسن کچل گفت در سر چهار شهر دکان پینیدوزی دارم. از صبح تا شب کفش های مردمو مردم رو کوک میزنم. چند قیرونی که گیرم میاد با اونها بسات شبانه را بپام میکنم. هر شب؟ هر شب. اگه خبر به گوشش آباز برسه و بیاد در دکانتو ببنده چی کار میکنی؟ شامتو بخور و یه گوشه بگی بخواب درویش جان. چرا نفوس بد میزنی؟ نفوس بد کدومه؟ اگه شد چیکار کار میکنی؟ به خواب درویش میخوام چرا خاموش کنم. خونه تو بوی شراب میده نمیتونم بخوابم. خوابم. باز خداحافظی کرد و از خونه حسن بیرون اومد. به پشت دروازه که رسید دروازه در براش باز کردند و به قصر وارد شد. فردا صبح شعب روی تخت نشست و به وزیرش گفت وزیر بله قبل یالم در سر چهار سوق شهر دکان پینه هست. به فراشها بگو برن و بگن شا گفته یا 500 تومن مالیات میدی یا در تو تخته می قبله عالم شما به هیچ دکانی 500 تومن مالیات نوستین مگه بندی خدا چگونه کرده تو به این کار کار نداشته باش. چشم قبله عالم. حسن کچل در دکانتو باز کرده بود که یکو فراشهار سر رسیدند. حکم شا باید 500 تومن مالیات بدی. امو دکان پیندوزی و 500 تومن مالیات به زرگری اینقدر مالیات نمیبندن چند ساله که مالیات ندادی دکان پیندوزی که مالیات نداره حکم حکم شاهباسه بنده ای خدا یا مالیاتت رو بده یا در دکانت رو تخته میکنیم حسن کچل نگاه کرد و دید که محر, محر شاهباسه خواست داد و فریادی بکنه که فراش و یقش و گرفتند و چند تا لگت بهش زدند و از دکان بیرون انداختنش رو در دکان رو بستند و رفتند. منده خدا مونده بود چیکار کنه؟ با خودش گفت این مرده که زبون سیاه از کجا دوچاره ما شد؟ همون شد که گفته بود. رفت خونش، اما دید چاره نیست. شب بساتش جور نیست. یکی دوغاره اونی در خونه پول داشت. برداشت و اومد به بازار یکم نخود و نقل و کشمیش خرید اونها رو با هم قاطی کرد و برد بر مزار خاجه روشنی دور مزار گردوند و اومد دوباره به بازار و بنا کرد به داد زدن های مشکلگشا آوردم مشکلگشای خاجه روشنی درمان هر دردی هر زنی بچه نمیاره بخوره بچه دار میشه بود که مشکل گشای های روشنی اووردم. مردم دورش جمع شدند و امروز سه برابر هر روز کار کرد. با خودش گفت از فردا میرم مشکل گشام میفروشم. بیکارم برم پینه دوزی کنم. هرچی لازم داشت برای بسات شبانش تهیه کرد. سه تا مطرب و سه تا رقاص خبر کرد و اومد به خرابش. مطرب پا بنا کردند، به زدن و رقص ها برقصیدند. خودش هم بالای تخت نشست و بنا کرد به شانه کردن هفت لاخمو. حالا حسن کچل همینجا باشه تا ببینیم شاه عباس چیکار میکنه. شاه عباس سر سفره نشست که غذا بخوره. باز لقمه تو گلوش گیر کرد. ای ایداد بی بیداد. باز کی توی شک گرسنه مونده؟ حرکت کرد. رخت درویشی به کرد، کشکول رو پر از پلو کرد و تورزین و برداشت و از قش بیرون اومد. چند قدمی که بیرون از شهر رفت، دید چند نفر پریشان حال نشستن. جلو رفت و سلام داد. علیکی گفتند و همچنان نشسته بودند. چارپاس گفت: "اینجا چیکار میکنید؟ گفتند: "مسافریم، دیر وقت رسیدیم. به شهر راهمون ندادن. قوت و غذایی هم نداریم. نمیدونیم تا صبح باید چیکار کنیم." از ضیافت خانه شاه با خودم پلو وردم انگار قسمت شما بوده و دوباره کشکول رو بین اونها گذاشت و بنده های خدا دور کشکول نشستند و بنا کردند بخوردن خودت نمیخوری درویش خوردم خدا عوضت بده خدا عمر و عزتت رو زیاد کنه قضاوشونو که خوردن هر کدوم گوشه ای دراز کشیدم. شاه عباس دوباره به راه افتاد با خودش گفت برم ببینم حسن کچل در چه حاله لابد امشب چراغش خاموشه دید اوهو خدا پدر حسنو بیامرزه دیشب اگر از ده قدمی صدای و زربش میومد امشب از سی قدمی صدای ساز و دهولو و بزن و بکوبش میاد یه دنگ و دونگی را انداخته که بیا و ببین جلو رفت و از درز نگاه کرد دید بله بالای تخت نشسته و رو شونه میکنه مطربا هم میزنن و میرقصن شوری به پا کردن که اون سرش ناپیدا شب باز در زد کیه درویشی راه گم کرده خدا کنه مثل درویش دیشب بد زبان نباشی بازه. شب در درو باز کرد و وارد شد همونجا نزدیک در نشست حسن گفت بیا بالا درویش جان بیا و روی تخت بشین تو مهمانی. شعباس و برد بالای تخت نشون. شعباس نگاه کرد که مقام و مرتبه حسن از دیشب بالاتره. مدربان میزنن. رقصه ها جای حسن خیلی بلنده. اگه همین جوری پیش بره فردا شب شاه صداش میزنن. باز زدند و کوفتند تا دمدمای صبح شد. پولشون رو گرفتند و رفتند. حالا حسن مونده و شعباس. شعباس گفت مرد ناحسابی من همه شهر رو را میرم و مت علی میخونم اونقدر در نمیارم که خرج و برجم بشه تو از کجا این همه پول در میاری؟ به جای این خرجا برو خودت برای خودت ای بخر درویش جان احترامت واجب به این کارا کاری نداشته باش کیفتو بکن و رایتو بگیر و برو بیا بالا غیرتن راستشو بگو گفتم درویش جان احترامت واجب قدمت روی چشم اما این فوزولی ها به تو نیمده. جان درویش بگو. حسن کچل گفت حالا از خدا پنهان نیست. از تو چه پنهان امروز فراش های اومدند و دکان پینه دوزی رو تخته کردن. ما هم دیدیم لنگ موندیم برای امشب. حالا که موندیم پول سوروسات شب و چجوری فراهم کنیم؟ چند قرانی که در خانه داشتم، نخود کشمش مشکل گوشا خریدم و دور مزار حاجی روشنی گردوندم و بردم به شهر بین مردم اونها رو فروختم هر روز اگر دخلم ده تومن بود امروز 20 تومن شد اگر خدا به دل شاه عباس انداخت شا عباس اومد و این کارت رو هم چپه کرد میخوای چیکار کنی به ونبون سیاتو و شد که شاه رو بزنه شعباز گفت بشین بابا ما که دعوا نداریم آقا درویش زبون سیاهه. گفتم اگه خدا به دل شعباز اینداخت. نگفتم خدا به دل عباس اینداخته. اصلا کچل ساکت شد. کم کم با هم صحبت کردن از هر دری تا سپیده صبح. شعباز خدافیزی کرد و به طرف قصر راهش رو گرفت داره. به قصر گرسید لباس سرخ پوشید و روی تخت نشست. خبر به وزیر و وکیل دادن که شعباس لباس قذب پوشیده و روی تخت نشسته. لرز به دست و پای وزیر و وکیل افتاد. بود ترس و لرز اومدن. دعا و سنای پادشاه رو به آوردن و دست به سینه ایستادن. فراش مونده بودن که چه دستوری میخواد بده. شاه گفت فراش ها تمام شهر را بگردن و هر کس مشکلگوش ها میفروشه بزنن زیر تشتش و نگذارن مشکلگوش ها را بفروشه. از امروز فروش مشکلگوش ها جای چون و چرا و پرسش نبود. فراش ها تو کوچه و خیابون دوره افتادن. حسن کشل تشت مشکل ها به زیر بغل در میان بازار داد میزد. آی مشکل گش های روشنی او بردم. مردم دورش جمع شده بودند که فراش ها از راه رسیدن. زدند زیر تشتش تمام تشت به هوا و هوا پرید و به دهانش چهار تا زدن ها چیکار میکنی؟ حسن کچل داد و بیداد چی کار میکنید؟ گفتن فرمانش و عباس هرچه چه پول داشت ازش گرفتند و؟ یه چند تا لگت بهش زدن و رفتن دنبال کارشون حسن کچل مونده بود و تشت چپه شده و جیبای خالی با تلخی برگش به خونش حالا زمین و زمان دشنام میداد. دراز کشید که بخوابه اما مگه خوابش می برد بسات سروسات شبش رو باید چی کار کنه با خودش فکرد با دراز کشیدن که کار درست نمیشه، حرکت کرد و دوباره اومد به بازار. از دره یه دکان که رد می دید لباسهای نیمدار می فروشن. بین اونها چشمش به یک لباس فراشی افتاد. اونو خرید و بتن کرد. اومد کنار خیابون، اونجا رو قروق کرد. هر کس که می رفت جلوش رو نگه می داشت و ازش ایرادی میگرفت. مثلا، چرا راهت رو کج میری؟ برای چی به دیوار مردم نگاه کردی؟ اینا رو بهانه کرده بود و هرکس رو که می‌دید جریمش می کرد. نشده دید چند برابر هر روز کار کرده. بلا فاصله سروسات شبانش رو فراهم کرد و به منزل آمد. شعب باز که غذا داشت می‌خورد، باز دغمه تو گلوش گیر کرد. دوباره کشکولش رو پر از پلو کرد، رخت درویشی بتن کرد، تورزین و برداشت و از قصر بیرون اومد. چند تا مسافر بیرون دروازه بی آزوغه مونده بودن. کشکول پولو رو جلوه اونها گذاشت و به سمت خونه حسن کچل راه افتاد. با این خیال که امشب اونجا دیگه هیچ خبری نیست و حسن کچل زانوی قم بغل کرده. هنوز خیلی مونده بود به اونجا برسه. یک صدای ساز و نوازی اومد که بیا و ببین. شب باز، خیلی ناراحت شد. با خودش گفت ای این چه حکایتیه هر چه جلوتان میره صدا بالا و بالاتر میره. همچین که انگار از در و دیوار و خاک و هوا صدای ساز و نواز میاد. شهب اومد پشت در رو از درز در نگاه کرد. دیشب اگه سه تا مطرب داشت این شب تا بود. دیشب اگه سه تا رقاص داشت امشب چهار تا بودن. ست تا شم روشن کرد همچین که خونش این روز روشن روشن شده بود. گلی به جمال حسن امروز انگار کاروکاسویش پر رو نقتر بوده. شهب باز در زد و حسن گفت کیه؟ درویش. در درویش بیا تو. بفرما قدم روی چشم ما گذاشتی. شعباس وارد شد و روی تخت نشست مطرب ها همچنان میزدند و رقاص ها نیز میرقصیدند زدن و رقصیدن تا دمدمای صبح حسن پول اونها را حساب کرد و انها رفتند شعباس گفت انگار امروز بیشتر از دیروز مشکل گشا فروختی حسن گفت چی بگم خدا شااباس را چیکار کنه امروز فراش ریختن سرم. هشت مشکل ها رو چپه کردند و هر چی که داشتم ازم گرفتن. چند تا هم مشت و لگت کردن. اگه پولاتو گرفتن پس این دم و دستگاه و این سور و ساد از کجاست؟ حسن خندید. نگاه کن. اون دست لباس فراشی رو نشون شعب باز داد. از بازار کهنه فروش ها خریدم. یه خیابون رو غرق کردم و هر کس که از خیابون رد شد به بحانی جریمش کردم. خدا بزرگه در ویش از شا عباس نترسیدی؟ برای چی از شا عباس بترسم؟ شا عباس اگه شا عباس بود جلو فراشاشو میگرفت که تشت مشکل کشامو چپه نکنن که پولامو ازم نگیرن که منو نزنن شا دیگه حرفی نزد. سبیده صبح از حسن خدافزی کرد و راه قصر رو در پیش گرفت روی تخت نشست و وزیر و وکیل دست به سینه حاضر شدند وزیر بله قبله عالم برید به فلان گذر یک نفر رخت فراشی به تنداره. داره او رو بگیرید و بیارید مبادا دست روش بلند کنید بله قبله عالم وزیر با چند تا فراش رفتند و جایی که باز بهشون نشون داده بود دیدن. و حسن کچل رو دیدن که اونجا رو قراخ کرده و صغیر و کبیر رو جریمه میکنه. تو کی هستی فراش شا باز بیا که شاه با کار داره. دست و پای حسن کچل به لرز افتاد. شا عباس؟ شا با من چیکار داره؟ بیا از خودش بپرس. حسن کچل جلو افتاد و با اونها به قصر شاه رفت. شاه روی تخت نشسته بود و وزیر و وکیل دورش رو گرفته بودند حسن از ترس جرأت نگاه کردن به شاه رو نداشت شاه گفت تو کی هستی نوکر شاه از کی نوکر او هستی از وقتی دست چپ و راستم و شناختم تا حالا کجا بودی که ندیدمت زیر سایه قبله عالم حاضری همینجا نوکریه من رو بکنی و توی قصر بمونی و میرغضب من باشی امر امر قبله عالم است از امروز در قصر هستی و میرغضب ما بدون فرمان ما از قصر بیرون نمیری چشم قبله عالم شاپاس دستور داد که شمشیر و لنگ میرغضبی رو ابردند لنگ قرمز رو روی شونه حسن انداخت و شمشیر رو به کمرش بست حسن کچل که فکر و ذکرش شب و سور و سات شبانش بود گفت قبله عالم مواجب هم میدهید بله سر ماه میروی و مواجبت رو از خزانه میگیری سر ماه سر ماه به سر ماه که دیر قبله عالم میگم هفته به هفته مواجبت رو بدن زودتر نمیشه نخیر هر روز آفتاب که طولو کنه به قصد میای و تا تاریک شدن هوا حقی نداری از قصب بیرون بری حسن چاره نداشت تا غروب توی قصب قدم زد هوا که تاریک شد در رو به روش باز کردند. از قصب بیرون اومد و صورت و سات شوانش رو خواست فراهم کنه رفت دم دکان نجاری اوستای نجار تیغه شمشیر رو بردار و بهجاش تیغه از چوب بسازد استاد نجار تیغه شمشیر رو قطع کرد و به همون اندازه از شو تیغه براش تراشید. حسن تیغه شمشیر رو فروخت و پول استاد نجار رو داد و سور و سات شبانهش رو تهیه کرد و به خرابش رفت. شاه عباس دوباره لغمه تو گلوش گیر کرد. رخت درویشی به تنگ کرد و تورزین و کشکول رو برداشت و از قصر بیرون اومد. هنوز خیلی مونده بود. به طرف خونه ی حسن کچل برسه که یهو صدای گم و گم و ساز و نواز گوشش رو کر کرد. از هر شب بلندتر بود. با خودش گفت این چه حکایتیه؟ تا تاریکی شب که تو قصد نگهش داشتم پولم که نداشت پس از کجا این و ساتو فراهم کرده؟ اومد پشت در و از درز در نگاه کرد. مطربا میزدند و رقاسه ها میرخ حسن کچلم روی تخت نشسته بود و هفت لاخمون رو شونه میکرد. شاه عباس به در زد. حسن کچل صداشو بلند کرد. هرکی هستی در بازه بفرما. شاه وارد شد و چشمش به حسن افتاد. حسن به درویش نگاهی کرد و از جا بلند شد. خوش اومدی خوش اومدی دردیشان، قدم روی چشمان ما گذاشتی درویش رو برد و روی تخت نشوند و مطربا تا دمدمای صبح زدند و رقاسه هم رقصیدند دم صبح حسن کچل پول اونها رو داد و بنده های خدا رفتند مجلس که آرام شد شعباس گفت امروز چند نفر رو جری کردی به جان درویش هیچ کس امروز تا به شب توی قصر شاه عباس اسیر بودم پس از کجا پول وردی؟ این سوروساز رو چجوری راه انداختی خدا بزرگ درویش میدونم اما از خدا پنهون نیست از تو چه پنهون تیغی شمشیر شاه عباس فروختم و سوروسات شبانه رو فراهم کردم چیکار کردی شمشیر شاه عباس رو فروختی توی قصر به اون بزرگی کی به شمشیر کمر من کار داره که تیغش از چوب یا از فولاد؟ گیریم شا باز فردا قذب کرد و خواست گردن یه نفر رو بزنه. اون وقت چه کار می کنی؟ درویش تو هم حرفای دل سرد کننده می برای چی باید شا قذب کنه؟ برای چی باید خونه یه نفر رو بریزه؟ حالا از ما گفتم بود رفیق. سپی دم شا عباس کرد و به طرف قصب را افتاد. به غز گرسید لباس به بتن کرد و روی تخت نشست. ترس تو دل همه اهالی غزب افتاده بود که چه اتفاقی افتاده و شا عباس برای چی لباس غذب بتن کرده؟ همه جمع شدن اما کسی جرأت سؤال کردن رو نداشت. شاه سرش رو بالا آورد و رو به وزیر گفت وزیر وزیر قدم جلو اومد. بله قبل یالم. جواب نمک خوردن و نمکدان شکستن چیه؟ مرگ قبلی عالم. ش رو به جمع کرد و گفت شنیدی چی گفت؟ همه گفتند؟ بله قبله عالم. ش به وزیر اشاره کرد و گفت برو روی تخت پوست میر بنشین. وزیر با ترس جلو رفت و روی تخت پوست نشست. ش موشت هم زد. چندتا تا غلام، چند تا کیسه بزرگ آوردن و کنار وزیر گذاشتند. همه حاج و واج به وزیر و شاه نگاه میکردند که شهباز صداش را بلند کرد و گفت دیشب به خزانه دست برد زدند و مال دوزی تو دو خونه وزیر پیدا شده. شهباز لحظه سکوت کرد و بلند فریاد کشید میر قذب. حسن که در پشت سر همه ایستاده بود جلو دوید بله قبلی عالم، به زن گردن وزیر خطاکار رو حسن کچل چاره ای نداشت پادشاه چنان با تحکم گفته بود که غیر از فرمان بردن چارهای نمونده بود جلو رفت و لنگ قرمز رو دور گردن وزیر بست نگاهی به چهره وزیر کرد که رنگ تو صورتش نمونده بود قبلی عالم، بله در پیشون این آدم من گناهی نمی بینم. گفتم بزن. وگرنه دستور میدم خودت رو گردن بزنم. حسن که دید چاره ای نداره و از طرف دیگه با شمشیر چوبی چجوری گردن وزیر رو بزنه ناچار دستاش رو بالا هرد و گفت خدایا خداوندا خداوند خودت بهتر میدونی که وزیر پادشاه گناهکاره یا نه. اگه گناهکاره شمشیر منو تیزتر کن و اگر بی گناهه شمشیرم رو جوری کن که انگار چوبی به دستمه و دست من به خون یک بیگناه آلوده نشه دست به شمشیر برد و شمشیر رو از غلاف بیرون کشید شمشیر چوبی بود حسن به شمشیر چوبی نگاه کرد و خودش رو در دست پادشاه انداخت دیدید قبلی آلم؟ دیدید که راست گفتم؟ وزیر بیگناهه شعباز دستور داد مجلس رو خالی کنند. وقتی مجلس خالی شد رو به حسن کشل کرد و گفت اون درویشی که هر شب به خونت می اومد، خودم بودم خیلی تقلا کردم که در روزیس رو ببندم ولی نتونستم هر دری رو بستم تو در دیگری رو باز کردی بیا این کلید در دکانت برو هر جور که دلت میخواد زندگی کن